مصنوی معنوی مولوی برنامه یک سد و بیست و درمانی لما خلقت الافلاکه شد چونین شیخ گدای کوبکو، عشق کو آمد لا اتقو عشق جوشد بهر را مانند دیگ عشق ساید کوه را مانند ریگ عشق بشكافد فلک را صد شکاف عشق لرزاند زمین را از گذاف با محمد بود عشق پاک جفت بهر عشق او را خدا لولاک گفت منتها در عشق چون او بود فرد پس مرو را زنبیا تخصیص کرد گر نبودی بهر عشق پاک را کی وجود دادمی افلاک را من بدان افراشتم چرخ سنی تا علو عشق را فهمی کنی منفعت های دیگر آید ز چرخ آنچو بیزه تابع آید اینچو فرخ خاک را من خار کردم یکسری سری تازه خاری آشقان بوی بری خاک را دادیم سبزی و نوی تازه تبدیل فقیر آگه شوی با تو گویند این جبال راسیات وصف حال آشقان اندر سبات، گرچه آن معنیست و این نقش ای پسر تا به فهم تو کند نزدیک تر غسته را با خار تشبیه کنند آن نباشد لیک تنبیه کنند آن دل قاسی که سنگش خواندند نامناسب بود، مثال راندند در تصور، در نیاید عین آن، عیب بر تصویر نه، نفیش مدان رفتن آن شیخ در خانه امیر بحر کدیه روز چهار بار با زنبیل با اشارت غیب و عتاب کردن امیر او را بدان وقاحت و عذر گفتن او امیر را شیخ روز چهار کرت چون فقیر بحر کدیر رفت در قصر امیر در کفش زنبیل و شیل لحظنان خالق جان می بجوید تای نان نالهای های است ای پسر عقل کلی را کند هم خیرسر چون امیرش دید، گفتش ای وقی، گویمت چیزه منه نامم شهی. این چه سغریست و چه روی و چه کار که بروز اندر چهاربار چهار بار. کیست اینجا شیخ اندر بند تو، من ندیدم نرگدا مانند تو؟ حرمت و آب گدایان برده ای این چه زشت آورده ای غاشیه بر دوش تو عباس دبس هیچ ملحد را مباد این نفس نحس گفت امیرا بند فرمانم خموش ذاتشم آگه نهی، چندین مجوش. بحر نان در خیش حرس دیدمه، اشکم نانخواه را بدریدمه. هفت سال از سوز اشق جسم پز، در بیابان خوردم من برگ رز، تازه برگ خشک و تازه خوردنم، سبز گشته بود این رنگ تنم. تا تو باشی در حجاب بلبشر، سرسری در آشقان کمتر نگر. زیرکان که مویها بشکافتند، علم حیعت را بجان دریافتند، علم نیرنجات و سهر و فلسفه، گرچه نشناسند حق المعرفه، لیک کوشیدند تا امکان خود، برگزشتند از همه اقران خود. عشق غیرت کرد و زیشان درکشید، شد چونین خورشید زیشان ناپدید، نور چشم کو بر روز دید، آفتاب چون از او رو درکشید زین گذر کن پند من بپسیر هین آشقان را تو چشم عشق بین وقت نازک باشد و جان در رسد با تو نتوان گفت آن دم خد فهم کن موقوف آن گفتن مباش سینه های آشقان را کم خراش نه گمان برده تو توزین نشاد حزم را مگذار میکن احتیاط واجب است و جایز استو و مستحیل این وسط را گیر در هزم ای دخیل گریان شدن امیر از نصیحت شیخ و عکس صدق او و ایسار کردن مخزن بعد از آن گستاخی و استعسام شیخ و قبول نا کردن و گفتن که من به اشارت نیارم تصرف کردن. گفت و شد های های عشق غلطان بر رخ او جای جای صدق او هم بر زمیر میر زد عشق هردم طرف دیگی میپزد صدق آشق بر جمادی میتند چه عجب گر بر دل دانا زند صدق موسی بر اعصاب و کوه زد بلکه بر دریای پرشکوه زد صدق احمد بر جمال ماه زد بلکه بر خورشید رخشان را زد رو بر او آورده هر دو در نفیر گشته گریان هم امیر و هم فقیر ساعت بسیار چون بگریستند گفت میرو را که خیز ای ارجمند هرچه خواهی از خزانه برگزین گرچه استحقاق داری صد چونین خانه آن آنت هست. هر چت میل هست برگزین، خود هر دو عالم اندک است. گفت، دستور ندادندم چنین که به دست خیش چیز برگزین. من ز خود نتبانم این کردن فضول که کنم من این دخیلانه دخول. این بهانه کرد و مهره در ربود. مانع آن بود کان اتا صادق نبود، نه که صادق بود و پاک از غل و خشم، شیخ را هر صدق می نامد و چشم گفت، فرمانم چون این دادستلا که گدایانه برو نانی بخواد. اشارت آمدن از غیب به شیخ که این دو سال به فرمان ما بستودی و بدادی بعد از این بده و مستان دست در زیر حسیر میکن که آن را چون انبان بو کردیم در حق تو هر چه خواهی بیا بی تا یقین شود آلمیان را که ورای این عالم است که خاک به کفگیری زر شود مرده در او آید زنده شود نحس اکبر در وی آید سعد اکبر شود کفر در او آید ایمان گردد زهر در او آید تریاق شود نه داخل این عالم است و نه خارج این عالم. نه تحت و نه فوق نه متصل نه منفصل بی چون و بی چگونه هردم از او هزاران اثر و نمونه ظاهر می شود چنان که دست با صورت دست و غمزه چشم با صورت چشم و فصاحت زبان با صورت زبان نه داخل است و نه خارج او، نه متصل و نه منفصل. بل آقل و یک فیل اشاره. تا دو سال این کار کرد آن مرد کار، بعد از آن امر آمدش از کردگار بعد از این میده ولی از کس مخوا ما بدادیمت ز غیب این دستگاه هر که خواهد از تو از یک تا هزار دست در زیر حسیر کن برار هین ز گنج رحمت بیمر بده در کفه تو خاک گردد زر بده هرچه خواهندت بده مندیش از آن داده یزدان را تو بیش از بیش دان در عطای ما نه تحشیر و نه کم نه پشیمانی نه حسرت زین کرم دست زیر بوریا کن ای سند از برای روی پوشه چشم بد پس زیر بوریا پر کن تو ماشت ده به دست سائل بشکسته پشت بعد از این از عجر ناممنون بده هر که خواهد گوهر مکنون بده راو یا الله فوق ایدی هم تو باش همچو دست حق گذاف رزق پاش وامداران را ز عهده بارهان همچو باران سبز کن فرش جهان بود یک سال دگر کارش همین که بدادی زر کیسه رب دین زر شده خاک سیه اندر کفش، حاتم تایی گدای در سفرش دانستان شیخ زمیر سایل را بی گفتن و دانستان قدر وام وامداران بی گفتن که نشان آن باشد که اخرج به صفاتی الی خلقی. حاجت خود گر نگفته آن فقیر او بدادی و بدانستی زمیر آنچه در دل داشتی آن پشت خم قدر آن دادی بدو نه بیش و کم پس بگفتندی چه دانستی که او این قدر اندیش دارد ای امو او بگفتی خانه دل خلوت است خالی از کدیه مثال جنت است اندرو جز عشق از دن کار نیست. جز خیال وصل او دیار نیست. خانه را من رفتم از نیک و بد. خانم پر است از عشق احد. هرچه بینم اندرو غیر خدا آن من نبود بود، عکس گدا گردرا نخل یا ارجون نمود جز ز عکس بیرون نبود. در تک آب ار ببینی صورت عکس بیرون باشدان نقش عیفته. لیک تا آب از قضا خالی شدن تنقیه شرط است. در جوی بدن تا نماند تیرگی و خس درو تا امین گردد نماید عکس رو جز گلابه در تنت کو ای مقل آب صافی کن زگل ای خسم دل تو برانی هر دمه که از خواب و خور خاک ریزی اندر اینجو بیشتر سبب دانستن زمیرهای خلق چون دل آن آب زینها خالی است اکثر روها از برون در آب جست پس تو را باتن مصفا ناشده خانه پر از دیو و نسناس و دده ای خر مانده در خری کیز ارباه مسیحی بوبری بری شناسی گر خیال سر کند کس کدامین مکمن سر بر چون خیال می شود در زهد تن تا خیالات از درونه رفتن غالب شدن مکر روبه بر استعسام خر, خر بس کوشید و او را دف گفت. لیک جوالکلب با خر بود جفت. غالب آمد، هرس و صبرش بود ضعیف بس گلوها که برد عشق رغیف زن رسول کش حقایق داد دست کاد فقر ان یکن کفر آمده است گشته بود آن خر مجاعت را اسیر گفت اگر مکر است یک راه مردگیر زین عذاب جعباره بار هم، گر حیات است من مرده به گر خر اول توبه و سوگند خورد، عاقبت هم از خری خبته بکرد. هرس کور و احمق و نادان کند، مرگ را بر احمقان آسان کند، نیست آسان مرگ بر جان خران که ندارند آب جان جاودان چون ندارد جان جاود و شقیست جرأت او بر عجل از احمق است کن تا جان مخلد گرددد تا بر روز مرگ برگی باشدد اعتمادش نیز بر رازق نبود که برفشاند برو از غیب جود تا کنونش فضل روزی نداشت گرچه گه گه بر تنش جوه گماشت گر نباشد جو صد رنج دگر از پای حیزه بر از تو سر. رنج جو اولا بود، خود زن الال، هم به لطف و هم به خفت، هم عمل. رنج جو از رنج ها پاکیزتر، خاصه در جو است صد نفع و هنر. در بیان فضیلت احتما و جوع جو خود سلطان دارو هین این در جان چون این خارش مبین جمله ناخوش از مجاعت خوش شده است جمله خوشها به مجاعت ها رد است. مثل آن یکی می خورد نان فخفره گفت سائل چون بدین استد شره گفت جو از صبر چون دوتا شود ناون جو در پیش من هلوا شود پس توانم که همه حلوا خورم. چون کنم صبری، صبورم، لاجرم. خدا نباشد جو هر کس را زبون. کین علافزار است زاندازه برون. جو مرخاسان حق را دادند. تا شوند از جو شعر زورمند. جو هر جلف گدا را کیده هند. چون الف کم نیست پیش اونه هند. که بخور که هم بدین ارزانی، تو نهی مرغاب، مرغ نانی، حکایت مورید که شیخ از هرس و زمیر او واقف شد، او را نصیحت کرد به زبان و در ضمن نصیحت قوت توکل بخشیدش به امر حق، شیخ می شد با مورید بیدرنگ سوی شهر نان آنجا بود تنگ ترس جو و قهت در فکر مرید هردم می گشت از غفلت پدید شیخ آگه بود و واقف از زمیر گفت او را چند باشی در زهیر از برای قصه نان سوختی دیده صبر و توکل دوختی تو نیز نازنینان عزیز که تو را دارند بیجوز و مویز جو رزق جان خاصان خداست کی زبون همچو تو گیج گداست. باش فارغ تو از آنها نیستی که در این مطبخ تو بینان بیستی. کاسه بر کاسست و نان بر نان مدام از برای این شکم عام. چون بیمیرد میرود نان پیش پیش که زبیم بینوایی کشت خیش تو برفتی ماند نان برخیز گیر ای بکشته خیش را اندر زهیر هین توکل کن ملرزان پا و دست رزق تو بر تو ز تو آشق تر است. آشق است و می زند او مول مول که ز بی سبریت داند ای فضول. گر تو را سبر بودی رزق آمدی. خیشتن چون آشقان بر تو زدی. این تب لرزه خوف جو چیست؟ در توکل سیر میتانند زیست. برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.